افسانه یک کچل ها 16 داستان زیبا مغ قلم حمیدرضا خزائی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ماه بانو حسن کچل و استاد کفش دوز یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود پیرمردی بود که سه تا پسر داشت دوتاشون مودا و یکی بیمو. دو تا مودار بزرگتر بودند بچه ها کم کم بزرگ شدن و داشتن به سین تکلیف می رسیدن پیرمرد یه روز دست پسر بزرگشو گرفته و گفت یه برو در دکان کفش دوزی و به استاد کفشدوز گفت سلام استاد این پسر من شاگرد شماست گوشتاش از تو و استخوناش از ما استاد کفشدوز گفت اگه زبر و زرنگ نباشه استخوناش رو برای پس میفرستم بیرمرد قبول کرد و رفت چند روزی که گذشت استاد کفشدوز پسر رو صدا زد پسر اومد و دست به سینه در برابر استاد ایستاد. استاد گفت بشین پسر روی سکون نشست استاد خشتی به دستش داد و گفت به این خشت کوک بزن چه جوری به خشت کوک بزنم؟ بلد نیستم؟ بلد نیستی؟ نه استاد از جاش بلند شد و سر پسر رو برید گوشتاش رو از استخون جدا کرد و استخونها رو برای پیرمرد فرستاد پریمرد مرد پسر دومی رو فرستاد او هم به همین نف استاد کفش دوز، اون رو هم روی سکونشون خشتی به دستش داد و گفت به این خشت کوک بزن پسرم نتونست استاد کفش دوز سر اون رو هم برید و مثل قبل استخونهاش رو از گوشت جدا کرد استخون ها رو فرستاد برای پیرمرد پسر کوچیک که حسن کچل بود به پیرمرد گفت بابا میخوام کفش دوزی یاد بگیرم پیرمرد گفت بابا جنون دو تا برادرت که هشیار بودند نتونستن حالا تو که دیوونه چه چجور میتونی تو به این کارا کار نداشته باش دلم میخواد کفش دوزی یاد بگیرم پسر جون استاد کفش دوز توم میکشه داغ تو به دلم میذاره حسن اصرار کرد و بالاخره پدر رضایت داد. حسن دو پول سیاه از پدرش گرفت و رفت که کفشدوزیت بگیره. توی راه دو پول سیاه رو داد و یه مرغ خرید. اومد در دکان استاد کفشدوز و سلام کرد. استاد گفت چه کار داری؟ حسن گفت من برادر همون دو نفری هستم که اومدن یاد بگیرن. خب. شاگرد بشم شرط رو میدونی بله پس بشین حسن روی است. استاد مثل قبل خشتی به دستش داد و گفت به این خشت کوک بزن حسن تخم مرغ به دست استاد کفش دوست داد استاد نخ ندارم بی زحمت از این تخم مرغ نخ بیرون بیار تا به خشت کوک بزنم استاد هیچی نگفت چند وقتی گذشت. حسن در دکان کفشدوزی بود و کم, کم به چم و کار آشنا شده بود. استاد همش به دنبال بهانه‌ای میگشت تا استخونهای حسن رو برای پیرمرد بفرسته و هیچ بهانه‌ای پیدا نمیکرد. با خودش گفت: "میرم سفر و همه ی کارا رو میندازم گردن این." هر چقدر هم که زرنگ باشه نمیتونه حسن رو صدا زد. حسن؟ بله استاد. این دکان، این خانه و زندگی و همه گاو و رو به دست تو میسپارم. میرم سفر. وقتی برگشتم گاو و گوسفندا باید چاق و چله باشن و سرشون توی آخر. خاطر جمع باشه استاد. استاد دست زنش رو گرفت و به سفر رفتند. در نبودن استاد حسن هی گاو و گوسفندا رو و گوشتاشو با پدرش می‌خوردن و پوست رو پر از کاه می کرد و سرشونو رو توی آخر گاو و گوسفندا تموم شدن استاد تو دلش قند آب شده بود حالا که بر می حسن به هیچ کدوم از کارا نرسیده حتما گاو و گوسفندا لاغر شدن و مردنی بعد ازش می برای چی این لاغر شدن؟ حتما میخواد بگه دستهنا بودم، نتونستم، اون وقت منم سرشو میبرم و استخوناشو برای پدرش پس میفرستم. استاد بعد از چند وقت از سفر برگشت. حسن، جلوی خونه بازی میکرد. حسن، بله استاد، تو که بازی میکنی، پس کی به کاب و خاطر میرسه؟ خاطره جمع باشه استاد، همه چاق و چله هستن، و همهشون سرشون تو آخوره. باری که الله بیا نشون بده. رفتن به طویله. استاد دید بله. گاب و همه چاق شدن. و سر همهشون توی آخوره. تا به یکی از گاوا دست زد گاو افتاد. ای وای. و هر کدوم که دست می زد می اینا که مردن. استاد جان گفتی چاق باشن. سرشون هم توی آخور. نگفتی که زنده باشن یا مرده. استاد کفش دوست ترسید شب به زنش گفت زن من از این حسن می ترسم بیا تا زوده از این شهر فرار کنیم برای چی مرد حالا به این دلیل و به اون دلیل همون شبانه اگه خیرت و هم داشتن همه را توی صندوق گذاشتن و بار گاو و خری که داشتن کردند و رفتند حسن که هوا دستش اومده بود، رفت و توی یکی از این صندوق پنهان شد. اتفاقاً صندوق رو به پشت یه خر گذاشته بودن. توی راه که میرفتند، استاد کفش کفشدوز به زنش گفت خوب شد که فرار کردیم. اگر نه معلوم نبود که حسن چه بلایی سرمون میاره؟ حسن صداش رو بلند کرد. تو چقدر ساده ای استاد جان؟ استاد کفشدوز وحشت سده دروبرش رو نگاه کرد. اما کسی اونجا نبود. خودش بود و زنش و یه خر و گاف که جلوتر از اونها می رفتن. پرسید تو کجا هستی حسن؟ به شکم خر. استاد کفش دوز کاردش رو کشید و شکم خر رو پاره کرد. هرچی نگاه کرد کسی اونجا نبود. حسن دوباره صداش رو بلند کرد. تو چقدر ساده ای من به شکم گاو هستم. استاد شکم گاو رو هم پاره کرد و حسن رو پیدا نکرد، اومدن تا لب دریا رسیدن. استاد از بس که تقلا کرده بود خسته شده بود. لب دریا جا اینداختان و خوابیدن نصف شب حسن از صندوق بیرون اومد و از لباسهای استاد به سراتن خودش کرد و رفت بالای سر زن استاد. زن، زن بیدار شد، بیدار که حسن رو پیدا کردم هنوز که خوابه بیا تا دست و پاشو بگیریم و بندازیمش به دریا زن خوابالو بود و نمیفهمید که چیکار میکنه اومدن بالای سر استاد حسن گفت من دستاشو میگیرم تو هم پاهاشو بگیر دست و پای استاد و گرفتن و تو دریا انداختن صبح که شد زن از خواب بیدار شد و دید که شوهرش نیست و به جای اون حسن خوابیده بنده خدا فهمید که توی عالم خواب چه دست گلی به آب داده. حسن وقتی از خوابیدار شد به زن گفت با تو کاری ندارم. میخوای برگردی بری سر خونه زندگید. نمیخوای هر کجا که دوست داری برو. زن سر خونه زندگیش برگشت و حسن به راهش ادامه داد. اومد اومد تا به درختی رسید که تو سایه درخت یه چرخ نخرسی گذاشته بودن. حسن در سایه درخت و کنار چرخ نخریسی نشست. چوبانی با گله گوسفندش از اونجا رد می شود. دید که حسن اونجا نشسته و یه چرخ نخریسی جلوش گذاشته. پرسید اینجا چیکار میکنی؟ حسن گفت خدا این درخت رو به من داده هفته یک چرخ برام میزد. زاد. می فروشم و با پولش زندگی می عجب درخت خوبی؟ نمیشه درخت رو به من بفروشی مگه دیوونه شدم اما در سایه برای خودم نشستم و درخت هر هفته برام چرخی میزاد چی بهتر از این بیا گوسفندام از تو در عوض درخت مال من باش حالا که التماس میکنی عیبی نداره درخت از تو گوسفندارو گرفت و چوپان رو در سایه درخت کاشت اومد و اومد تا به چوپانی رسید که توی سایه کوه نشسته بود و استراحت میکرد. حسن داد زد آی امون کوه رو بگی که الان رود میفته. بنده خدا کوه رو گرفت که نیفته. حسن گله گوسند اون هم برداشت و خودش برد اومد و اومد تا به چوپان دیگه رسید که مثل خودش کچل بود. خل‌هاهول کردند پرسید چیه رفیق قصه داری چوپان گفت برای چی قصه دار نباشم میخوام داماد بشم و هیچ دختری زنم نمیشه اینکه که قصه نداره تو کچلی و منم کچل بیا اونجا یه نجاست هست سرتو بذار توی اون که مودار بشی بیچاره چوپان فکر راست میگه گفت راست میگی حسن گفت دروغم شیه بنده خدا خام شد و حسن گله اون رو هم جلو اینداخت و به در خانه استاد کفش دوز رسید و گفت بیا زن این رو بدو شو با شیرشون هرچی دوست داری درست کن چوب اون که درسای درخت نشسته بود و هرچی سب میکرد درخت براش چرخ نخریسی نزایید یه هفته دو هفته گذشت و هیچ خبری نشد حرکت کرد و رفت که حسن رو پیدا کنه. توی راک که می اومد دید یک نفر کوه رو گرفته. گفت چی کار می کنیم برای چی کوه رو گرفتی؟ گفت برای اینکه نیفته روم. بندیه خدا اگه کوه بخواد بیفته خب میفته. تو که زور نداری کوه رو نگرداری. نخه کوه روم میفته. خیلی خوب بیا برو بر من نیگر میدم تو برو کنار. کوه رو گرفت. چوپان دوم خودش رو کنار کشید او هم رفت کوه سر جاش ایستاده بود هی hey, داد و بیداد دیدی چه گلایی سرم رفت دو نفری به افتادن افتادند اومدن و اومدن تا به چوپانی رسیدن که سرش توی یک نجاست فرو کرده بود پرسیدن اما کار داری میکنی گو سرم مون نداره میخوام مودار بشه گفتند سرد از مدار شدن گذشته سرت رو در بیار که پوسید حسن کچل یه روز به پدرش گفت بابا برام زن بگیر پدر گفت پدر جان کسی زن تو نیمیشه حسن دار شد پدر دلش به حالش سوخت و گفت پسرجان برو کوچه هر زنی دختری که رد میشد بهش زنگ بزن هر زنی که استاد و بنا کرد به داد و بیداد بدون که همون اون زن از تو خوشش اومده و دلش می زنت بشه. حسن به کوچه رفت و هر زن دختری که از کوچه رد می شدن بهشون سنگ پرد می کرد. هیچی نمی گفتن. سرشون رو پایین می و رد می بیبی بی حسن اومد که رد بشه. حسن سنگی بهش زد. بیبی بی داد و بیداد کرد که برای چیز سنگ می زنی؟ حسن جلو دوید و دست بیبی بی رو گرفت و گفت آه تو از من خوشت اومده و دلت میخواد که زنم بشی بیبی عصبانی شد پیش بابای حسن اومد که این چه آدمیه این چه بچهی که تو تربیت کردی پیرمرد مرد گفت مگه چی شده بیبی هرچی که دیده بود و شنده بود تعریف کرد بابای حسن گفت واسه نخور ننه فردا به بهانه میبرمش برای هیزم جمع کردن و همونجا توی صحرا میکشمش تا همه از شرش خلاص بشن. حسن که پشت دیوار گوشیست داده بود و حرفای پدرش رو فردا صبح و همراه پدر به صحرا رفتند. بابای حسن توی این فکر بود که حسن چجوری بکشه و حسن هم توی همین فکر و هر دو خودشون رو گرم کار نشون میدادند. دادند. یه دفعه دیدن که چند تا سوار از سوارهای شعباز از دور به تاخت میان. حسن گفت بابا تا حالا به عمرت کار خلاف کردی؟ پدرش گفت چرا بابا جان چند باری توی جوونی کار خلاف کردم؟ برای چی میپرسی؟ نگاه کن اون سواره شعباس به دنبال آدمای خلافکار میان بیا برو توی قار تا خارها رو بذارم جلوی در قار که سواره رو نبینن بابای حسن ترسید تو از کجا میدونی؟ حسن گفت دیروز توی میدون شهر مردم میگفتن شا عباس خودش دستور داده. بله و اینجوری شد که بنده خدا رفت توی قار. حسن هیزم هیزمها رو جلوی در قار چید و اونها رو آتیش سر.